پنجشنبه شنبه 18 جولای 2013 صبح امروز صبح قبل سوار شدن به قطار سه تا روزنامه خریدم. چهار روز و پنج شبه که مگان گم شده و ماجرا را خوب پوشش دادن دیلی میل به طور پیشگویانه ترتیب پیدا کردن اکس های بیکینی پوش مگان رو داده اونا جزئیات بیشتری از چهره اون نسبت به من که از دور دیدمش دارن مگان مایلز سال 1983 توی روچستر متولد شده وقتی ده ساله بوده همراه والدینش اومده به کینگزلین توی نورفورک بچه باهوشی بوده خیلی باهوش یه هنرمند با استعداد و آوازخون نقل قولی از یه دوست هم مدرسه ای آورده که گفته اون خوشخنده بوده خیلی زیبا و شر به نظر میرسه با مرگ برادرش بین که خیلی بهش نزدیک بوده شیطنتش تشدید شده وقتی که مگان 15 ساله بوده بن 19 ساله توی تصادف موتورسیکلت کشته میشه. سه روز بعد از تشییع جنازه بن از خونه میره. دوبار دستگیر میشه. یه بار به خاطر سرقت، بارم به خاطر اغواگری برای جلب مشتری. رابطش با پدر و مادرش اونجور که از روی دیلی میل فهمیدن به طور کامل به هم خورده. والدینش به که با دخترشون آشتی کنن چند سال پیش فوت کردن. با خوندن این مطالب احساس میکنم به شدت برای مگان ناراحتم. به نظرم با همه این چیزا انگار خیلی با من فرق نداره اونم منظوی و بی نهایت تنهاست وقتی 16 ساله بوده میاد پیش دوست پسرش که خونه نزدیک دهکده هولکام توی نورفورک شمالی داشته رفیق هم مدرسهش گفته اون مرد مسنتر از مگان بود یه موزیسین یا همچین چیزی تو کار مواد بوده دیگه از وقتی اونا با همدیگه بودن ما مگان رو ندیدیم خیلی وقت میشه اسم دوست پسر رو ننوشته بودن. بنابراین احتمالا پیداش نکردن شاید حتی وجود نداشته باشه شاید هم مدرسهش چیز چرندی ساخته تا اسمش بره تو روزنامه ها بعد یو پرده بودن چند سال بعد به وقتی که مگان 24 ساله بوده و توی لندن زندگی می و یه جایی در شمال لندن به عنوان پیشقت کار میکرده اونجا با اسکاتیهول ملاقات میکنه یه پیمانکار مستقل آیتی که روابط دوستانه با مدیر رستوران داشته و اون و مگان خوب به هم دیگه جوش میخورن. بعد یه رابطه عاشقانه خیلی شدید بینشون ایجاد میشه و با همدیگه ازدواج می‌کنن. اون موقع مگان 26 سالش بوده و اسکات هم 30 ساله. چند تا نقل قول دیگه هم هست مثلا از یکی به اسم تارا اپستاین دوستی که گمان کرده بودن که شبیه که مگان ناپدید شده رفته پیش اون. اون گفته که مگان یه دختر سبکبار دوست داشتنیه و اینکه نظرش خیلی خوشبخت بوده تارا گفته اسکات نباید آسیبی به اون رسونده باشه اسکات اونو خیلی زیاد دوست داشت کلیشه ای در حرفای تارا وجود نداشت نقل قولی که از هنرمند و بسمیراجش بوزرا که رو توی گالری مگان ارائه میداد منو بهش علاق من کرد اون گفته بود مگان یه زن شکفت انگیزه. فعال و پرحرارت شوخ و یه فرد به شدت خاص با قلبی گرم نظر راجش هم چکیده نظر من بود یه دونه نقل قول دیگم از مردی به اسم دیوید کلارک یکی از همکارهای سابق اسکات اومده بود که مگو اسکات یه زوج آلین اونا با همدیگه خیلی خوشبختن خیلی همدیگر رو دوست دارن قطعات هم در تحقیقات وجود داشت اما این بیانات پلیس بود و نبودش یکی بود از هیچی هم کمتر بود اونا با یه نفر شاهد صحبت کردن و چندین خط تحقیقاتی رو دنبال کردن. تنها نظر جالب از کاراکا گسگیله که تایید میکنه دو مرد به تحقیقات پلیس کمک میکنن. قشنان مطمئنم منظورش اینه که اونا دو تا مزنون دارن. یکیشون باید اسکات باشه. ممکنه او یکی بی باشه؟ ممکنه بی باشه؟ اونقدر جذب روزناما شده بودم که مثل همیشه حواسم به مناظر نبود. وقتی قطار با سر صدا جلوی علامت قرمز وایساد، انگار من تو قطار تنها بودم چند نفر جلوی باغ اسکات جمع شده بودن دوتا مامور پلیس با لباس فرم درست باشه در خونه ساده بودن سرک کشیدم یعنی چیزی پیدا کردن اونو پیداش کردن شاید یه جسد مدفون توی باغ پیدا کردن شاید جسد و چپونده زیر سرامیکا لباسهای کنار خطاهن از فکرم بیرون نمیره اهمقانه است چون قبل از گم شدن مگان دیدمشون اگه به هر دلیلی مگان توری شده باشه نمیتونه کار اسکات باشه نه نه نه امکان نداره اون به طرز واری آشقش بود همه همینو میگن امروز هوا گرفته است آب و هوا تغییر کرده آسمون سربی رنگه تهدید کننده نمیتونم توی خونه رو ببینم نمیتونم ببینم اونجا چه اتفاقی افتاده؟ احساس میکنم پاک بیچارم نمیتونم پیاده بشم خوب یا بد حالا بخشی از این ماجرا هستم باید بدونم چی پیش اومده لاغل یه برنامه دارم اول باید راهی پیدا کنم تا یادم بیاد شنبه شب چه اتفاقی افتاده باید توی کتاب رو بگردم ببینم میتونم چیزی در مورد هیپنوتیزم پیدا کنم هیپنوتیزم میتونه کمک کنه چیزی یادم بیاد در واقع احتمال بازیابی زمان گذشته ممکنه؟ دوبامی که و این به نظرم مهمه چون فکر نمیکنم پلیس حرفمو حرفم و در مورد آشق مگان باور کرده باشه. باید با اسکاتیب ول تماس بگیرم. باید بهش بگم اون حق داره که بدونه. عصر. عطار پر شده از آدمایی که زیر بارون خیست شدن. نم لباسشون رو پنجره ها میشینه بوی بد بدن بوی عطر و صابون توی هوا روی سرای نمدار موج میزنه امروز صبح عبر حالت کننده ای داشتن تمام روز سنگینتر و سیاهتر شدن تا از یوه بغضشون ترکید درست مثل فصل بارندگی همی که کارمندهای ادارات تعطیل شدن و از دفتراشون اومدن بیرون خیابونها در اوج ساعت شلوقی گفت شدن و ورودی زیرگذرا با افرادی که چترشونو رو بازو بسم کردن محدود شد. من چتر ندارم برای همه خیص خیسم. احساس میکنم انگار یک یه سط آبرون خالی کرده باشه. شلوار کتونیم چسبیده به پاها و پین آبی رنگم به شکل خجالت هاوری بدن نما شده. تمام را از کتاب کنه تا زیررگذر دویدم و کیفم اونجل سینم گرفتم تا چیزی رو که میتونم پنهم کنم. بنا به که به نظرم است گیر افتادن توی بارون یه جورای موسکه و مدتی که توی بزرگراه گریز این بودم به شدت میخندیدم انقدر که نمیتونستم نفس بکشم یادم نمیاد آخرین باری که اینجوری خندیدم کی بود حالا نمیخندم به محض که برای خودم یه صندلی گیر میارم آخرین خبرها رو در مورد مگان روی تلفنم چک میکنم و این خبریه که من ازش وحشت دارم پلیس ویتنی در ارتباط با پرونده ناپدید شدن مگان که از عصر شنبه گم شده مردی 35 ساله را با تفهیم حقوقش بازجویی کرده است. اون اسکات دیگه مطمئنمونه. فقط میتونم امیدوار باشم قبل از اینکه به چنگ اون افتاده باشه ایمیل خونده باشه. وقتی از تفهیم حقوق حرف میزنن یعنی قضیه جدیه. یعنی فکر میکنن کار اونه هرچند هنوز مشخص نشده. شاید به هر حال اتفاقی نیفتاده باشه. شاید مگان حالش خوب باشه و همچنان این به نظرم محتمل تره که زنده است حالش هم خوبه و نشسته توی بالکن یه هتل رو به دریا پاشو گذشته روی نرده و یه نوشیدن یه خونکم دستشه فکر کردم به اون توی یه همچین جای هم لرز به تنم هم ناامیدم میکنه و بعد به خاطر این حس ناامیدی احساس زفت میکنم. من بدیش رو نمی مهم نیست چقدر بخاطر خاطر اینکه اسکات و فریب داده عصبانیم برای داغون کردن خیال من به یه زوج فوقلاده نه همش بخاطر اینه که من احساس میکنم منم بخشی از این رازم من به این قضیه مربوطم من فقط یه دختری توی قطار نیستم که بدون مقصد و هدفی در حال رفت و برگشته من میخوام مگان سالم باشه و جاش امن من همینو میخوام. ولی خب فقط این هم نیست امروز صبح یه ایمیل برای اسکات فرستادم. پیدا کردن آدرسش آسون بود. اسمش رو سرچ کردم و اینو پیدا کردم. shipwellconsulting.co.uk این سایت جاییه که توش آگهی مشاوره داده. سایه گستر و مبتنی بر خدمات وب برای مشاغل و سازمان های غیر که مار خودشه چون آدرس محل کارش همون آدرس خونشه. یه پیغام کوتاه به آدرس تماسی که روی سایت داده بود فرستادم. اسکات عزیز، من ریچل واتسون هستم. شما مرا نمیشناسید. مایلم با شما درباره همسرتان صحبت کنم. من هیچ اطلاعی از محل تقریبی همسر شما ندارم. نمیدانم چه اتفاقی برای او افتاده است، اما معتقدم اطلاعاتی دارم که میتواند به شما کمک کند. شاید شما نخواهید با من حرف بزنید. از این نظر شما را درک میکنم. اما اگر مایل به صحبت بودید این آدرس ایمیل من است. ارادتمند شما ریچل. نمیدونم با هم تماس میگیره یا نه. اگه خودمو جاش بذارم پاپ شک دارم که این کارو بکنه. لابد اونم مثل پلیس فکر میکنه که من از اونام که میخوان خودشونو نه خود هر آشی بکنه. آدم مرموز و عجیبی که ماجرا رو توی روزنامه ها خونده. نمیدونم چی میشه. اگه دستگیر شده باشه شاید هرگز شانس دیدن اون پیامو نداشته باشه. این برای من خبر خوبی نیست اما باید سعیم رو بکنم و حالا احساس بیچارگی میکنم احساس میکنم سر راهم مانع ایجاد شده نمیتونم چیزی ببینم چون مردم توی واگان به اون طرف خط سمت من ازدهام آوردن حتی اگرم بتونم ببینم با وجود بارش همچین بارونی نمیتونم اون ور نرده خطاها رو ببینم تعجب میکنم یعنی مدرکی از بین رفته یعنی درسته که تو این لحظه سر نخوا برای همیشه ناپدید شدن؟ چیزایی مثل لکه خون، اثر انگشت دی این ای، تحصیگار وحشتناک دلم میخواد یه نوشیدنی بخورم اینکه فقط بتونم تعم شراب و روی زبونم بچشم چیزی رو که احساس میکنم دقیقا میتونم تجسم کنم مثل بخار الکل که توی رگام نشت میکنه و سرم سنگین میشه ننوشیدم یادم نمیاد آخرین باری رو که برای سه روز متوالی نخوردم کی بوده مزه یه چیز دیگهم توی دهنم هست یه طعم چسبنده کهنه یه وقتی من اراده قویی داشتم یه وقتی میتونستم قبل از صبحونه ده کیلومتر بودم و هفتها رو با هزارو سیصد کالری در او سر کنم این یکی از چیزایی بود که تام و عاشق من کرد او میگفت کل شق من قوی من یادم وقتی همه چی به هم ریخته بود با هم یه بحثی داشتیم اون با من بعد اخلاق شده بود ازم پرسید چه چیکار کردی با خودت از کی تا حالا این همه ضعیف بودی من نمیدونستم نمیدونستم کجا تحلیل رفتم یادم نمیومد فکر می در طول زمان تک تکه از بین رفتم ذره ذره با زندگی با زندگی کردن. یوهو قطار توقف میکنه و با صدای گوشخراش نگران کننده رو علامت مسیر لندن ویتنی ترمز میکنه. زمزمه عذرخواهی مسافرایی که ایستاده بودن و به خاطر عدم تعادل همدیگر رو هل دادن یا پای همدیگر رو لگت کرده بودن از همه طرف باگم به گوش میرسه. سرمو بلند و یه چشم تو میشم با همون مرده که شنبه شب کمکم کرد نخورم زمین همون مصرخه صاف زل زده به هم. چشای آبی رمیدش قفل شده رو منو من اونقدر دست پاچه میشم که گوشیم از دستم میفته برش میدارم و پاس بالا رو نگاه میکنم این بار امتحانی نه من به اون باگان بررسی میکنم با اورنجام بخار روی شیشه رو پاک میکنم و به بیرون زل میزنم و بعدش بالاخره وقتی وقتی رومو رو برمیگردونم و بهش نگاه میکنم کنم لبخند میزنه. سرش یکم کم کج کرده. میتونم سرخ شدن صورتمو حس کنم. نمیدونم باید چه عکس عملی به لبخندش نشون بدم چون نمیدونم لبخندش چه معنایی داره. داره میگه آه سلام من تو رو از اون شب یادمه. یا میگه آها این همون دختره معسه که رو پله افتاد اون شب با حرفاش به من ریید. چیز دیگه ای؟ نمیدونم اما حالا که بهش فکر میکنم میبینم یه صحنه یه نما از رو پلاه تو ذهنمه مثل یه تکه از موسیقی یا تصویر فیلم همینطور حرف اون که گفت حق با توه خوشگله برمی کردم و دوباره از پنجره نگاه میکنم میتونم سنگینی چشاش رو روی خودم حس کنم دلم میخواد پنهون بشم ناپدید بشم تکم خوردنهای قطار تموم میشه و ثانیهای های بعد ما با قطار کشیده میشیم به اسکای ویتنی و به خاطر شلوغی مردم شروع میکنن به تنه زدن و همون جور که برای پیاده شدن آماده میشن روزدامهاشون رو تا میکنن و آی پد و تبلت رو خاموش میکنن دوباره سرم بلند میکنم و خیارم تخت میشه ازم دور شده از قطار پیاده شده به ذهنم میزنه که چقدر خیرفت و عمقم. باید پیاده میشدم و میرفتم دنبالش رو باش حرف میزدم. اون میتونست بهم بگه که چی به سرم اومده بود. شاید میتونست لاقل بعضی جای خالی رو پر کنه. برم میشم. دو دلم. میدونم خیلی دیر شده. در درا دارن بسته میشن. من وسط باکنم اما نمی‌تونم راهمو از وسط جمعیت باز کنم. درا در بیب صدا میکنن و بسته میشن. هنوز وایسادم. برمیگردم و از پنجره به بیرون نگاه میکنم در حالی که قطار داره کشون کشون دور میشه اون وای زیر بارون مرد به شب و همون که توی قطار از جلوش رد میشم بهم نگاه میکنه به خونه که نزدیک میشم بیشتر از خودم عصبانی میشم داشتم وسوسه میشدم قطارم رو عوض کنم به سمت شمال برگردم ویسنی و دنبالش بگردم معلومه که فکر مسخره‌ای بود و از اون احمقانه تر به جون خریدن ریسک هشدار گسکیل که دیروز بهم گفت از اون منطقه دوری کنم اما هر وقت یادم میفته که شنبه چه اتفاقی افتاده خودم خودمو میبازم ساعت قبل همین امروز عصر توی اینترنت گشتم و چیزی رو که خودم بهش شک دارم برام خیلی واضح و دقیق تایید شد هیپنوتیزم به طور کلی برای بازیابی ساعت‌های از دست رفته در اثر مستی مفید نیست چون هموجور که خودم هم قبلا فکر میکردم آدم موقع مستی خاطرهای نمیسازه که بعدش بخواد یادش بیاد موضوع اینه که تا همیشه یه سیاه توی زندگی من باقی میمونه